سوالی داشتم درباره قبت الصخره بله صخره ای که گویا در فلسطین اشغالی قرار داره درست خواستم استاد خواهش من درباره کیفیت جایگاه و روایت که درباره این سنگ هست اگه چیزی توضیح بدن بله ناصر زاده هستم از عراق جناب ناصرزاده زاده از عراق ممنونم از تماستون شنونده برنامه باشید ان شاء پاسختون رو بشنوید خواهش من خدا افس خوب استاد در مورد قبت الصخره بفرمایید قبه به معنی گنبد و صخره به معنی سنگه بله مقصود از قبت و صخره در سرزمین اشغالی اون گنبدیه که جزئی از بیت المقدس معصوع الاقساص و بالای سنگی ساخته شده که رسول خدا صلی الله علیه و شب معراج بالای اون سنگ روی اون سنگ دو رکعت نماز خوند و از اونجا تشریف بود به آسمان بمیره. بند. به این صورت که رسول خدا صلوات و سلام در سفر معراج ابتدا به اراده خداوند متعال از مکه منتقل شد به مسجد و اونجا صخره‌ای بود و سنگی بود و حضرت دو رکت اون روی اون سنگ نماز کند و از اونجا تشیع بود به آسمان بعدا بعدا ارز کنم که مسلمان ها جوزی از مسجد الاقصی، جوزی از بیت المقدس یک گنبتی هم بر فراز اون سنگ ساختن و اون گنبت را گفتن قبت و یعنی گنبتی که بالای اون سنگ ساخته شده پس در اون زمان خارج از مسجد بوده این سنگ؟ جوزی از مسجد بوده ولی محسوسی مخصوصی نداشته گنبت مخصوصی نداشته و ایشون اگر بخوان که بیشتر مطالعه کنند کتابی خیلی خیلی خوبیه به نام بیت مقدس و شخصی به آقای مهندس موحدی درباره بیت المقدس مقدس نوشته و ساختمان مسئول زایش ازایش، ارتفاعاتش، ارتفاعش، اندازهش، پنجرهاش از جمله خود این سنگ، از جمله ارز کنم که اون گنبدی که بالای این صخره ساخته شده خیلی خوب توضیح داده